اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ستایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمان ها و زمین که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه او هرچه بخواهد در آفرینش می و او بر هر چیزی تواناست ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و العزیز الحکیم. هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید کسی نمیتواند جلو آن را بگیرد و هر را امساک کند کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست و او عزیز و حکیم است یا ايها ناس اذکرون الله عليكم هل من خالق غیر الله یرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ای مردم یاد آورید نعمت خدا را بر شما آیا آفریننده ای جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز نیست با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می شوید و فقد كذبت رسل من قبلك و الى الله اگر تو را تکذیب کنند امخور ام موضوع تازه ای نیست پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود یا ایوه الناس این وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور ای مردم وعده خداوند حق است مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را فرید دهد و به کرم خدا مقرور سازد اند الشیطان لکم عدون فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر. البته شیطان دشمن شماست پس او را دشمن بدانید او فقط حزبش را به این دعوت میکند که اهل آتش سوزان جهنم باشند الذين كفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر کبیر کسانی که راه کفر پیش گرفتند برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست افمن له سوء عملی فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذنب بنفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون آیا کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب و زیبا میبیند. همانند کسیست که واقع را آنچنان که هست میابد خداوند هر کس را بخواهد گمراه میسازد و هر کس را بخواهد هدایت میکند پس جانت به خاطر شدت بر برانان از دست نرود خداوند به آنچه انجام میدهند داناست والله الذي ارسل الریاح فتثير سحابا فسقنا فسقناه الى بلد بیت فاحيينا فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهای را به حرکت درآورند سپس ما این عبرها را به سوی زمین مرده راندیم و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده می کنیم. رستاخیز نیز همین گونه است من کان یرید العزت فلله العزة جمیعا الیه یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو کسی که خواهان عزت است باید از خدا بخواهد چرا که تمام عزت برای خداست سخنان پاکیزه به سوی او صعود میکند و عمل صالح را بالا میبرد و آنها که نقشه های بد می کشند عذاب سختی برای آنهاست و مکر آنان نابود می شود و الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثا ولا تضع الا بعلمه وما یعمر من معنبر و لا ينقص من عمره الا فی کتاب ایند ذالک علالله یسیر خدابند شما را از خاکی آفرید سپس از نطفهی سپس شما را به صورت زوجهایی قرار داد هیچ جنس ماده ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود مگر اینکه در کتاب علم خداوند سبت است اینها همه برای خداوند آسان است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 و في مواخر من ولعلكم دو دریا یکسان نیستند. این یکی دریایی است که آبش گوارا آب و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور و تلخ و گلوگیر اما از هر دو گوشتی تازه میخورید. و وسایل زینتی استخراج کرده میپوشید و کشتی را در آن میبینی که آبها را می و به سوی مقصد پیش میروند تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر را بجا آورید یولجول لیل فی النهار و یولج نهار فی اللیل و سخار الشمس والقمر و الشمس والقمر كل یجری لأجل مسمى ذالكم الله ربكم له الملك والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب و خرشید و ماه را مسخر شما کرده هر یک تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهد. این است خداوند پروردگار شما حاکمیت در سراسر از آن اوست و کسانی را که جز او می حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند إن تدعوهم لا یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمیشنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمیگویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر میشوند و هیچ کس مانند خداوند آگاه و خبیر تو را از حقایق باخبر نمی‌سازد یا ای الناس شما فقرا به الله والله هو الغنی الحمید ای مردم شما همگی نیازمند به خدا تنها خداوند است که بی‌نیاز و شایسته ی هر گونه حمد و ستایش است این و جدید اگر بخواهد شما را میبرد و خلق جدیدی میآورد. و ما علی الله و این برای خدابند مشکل وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَا وَإِن تَدْعُمُ ثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ و من تزکه فإنما لنفسه وإن الله المصير هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بردوش دوش کشد و اگر شخص سنگین باری دیگری را برای حمل گناه خود بخاند چیزی از آن را بردوش نخواهد گرفت هرچند از نزدیکان او باشد تو فقط کسانی را بیم میدهی که از پروردگار خود در پنهانی می‌ترسند و نماز را برپا میدارند و هر کس پاکی و تقوا پیشه کند نتیجه آن به خودش باز میگردد. و بازگشت همگان به سوی خداست و ما یستوی و البصیر و بینا هرگز برابر نیستند ولا ولا النور و نه ظلمتها و روشنایی. ولا ولا و نه سایه آرام بخش و باد داغ و سوزان وما ما یستوی الاحیاء ولل إن الله یسمع من یشاء و ما انت بی من فی القبور. و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفتند برسانی این انت الا نذیر. تو فقط انذار كننده ای اینا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا و ان من امته إلا خلا فیها نذیر ما ترا به حق برای بشارت و انظار فرستادیم و هر امتی در گذشته انظار كننده ای داشته است و این یکذبو که فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و اگر تو را تکسیب کنند عجب نیست کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکسیب کردند آنها با دلایل روشن و کتاب های پند و موعزه و کتب آسمانی روشنگر مشتمل بر معارف و احکام به سراغ آنان آمدند اما کور دلان ایمان نیاوردند. بردند سپس من کافران را بعد از اتمام حجت گرفتم و سخت مجازات کردم مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟ الم تر ان الله انزل من السماء ما انف اخرجنا بی ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابی بسود آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن میوههایی رنگارنگ از زمین خارج ساختیم و از کوحانیز به لطف پروردگار جادههایی آفریده شده سفید و سرخ و به رنگهای مختلف و گاه به رنگ کاملا سیاه و من الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء این الله عزیز غفور. و از انسانها و جنبندگان و چهار پایان انواعی با رنگهای مختلف آری حقیقت چنین است از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند خداوند توانا و آمرزنده است کسانی يتلون كتاب الله مما رزقناهم يرجون لن که کتاب الهی را تلاوت کنند و نماز را برپا می‌دارند. و از آن به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می‌کنند. تجارتی پرسود و بیزیان و خالی از کساد را امید دارند لیوفیهم اجورهم و من فضلی غفور شکور آنها این اعمال صالح را انجام میدهند تا خداوند عجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و گذار است والذی وحینا لیك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر. و آنچه از کتاب به تو وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ با کتب پیش از آن خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست ثم اورثنالکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ سَبِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكبير. سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراست دادیم اما از میان آنها ادعی بر خود ستم کردند و ادعی میان رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی ها پیشی گرفتند و این همان فضیلت بزرگ است جنت تعدن يدخلونها یحلون فيها يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا پاداش آنان باغ‌های جاویدان بهشت است که در آن وارد میشوند در حالی که با دستبندهایی از تلاو و مروارید اند و لباسشان در آنجا حریر است وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. آنها میگویند حمد برای خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت پروردگار ما آمرزنده و سپاس گذار است الذين احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا همان کسی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت جای داد که نه در آن رنجی به ما میرسد و نه و واماندگی والذين كفروا لهم نار جهنم لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وكثاني که کافر شدند آتش دوزخ برای آنهاست هرگز فرمان مرگشان صادر نمی شود تا بمیرند و نه چیزی از عذابش از آنان تخفیف داده می شود این گونه هر کفران کننده ای را کیفر می دهیم و هم یسترخون ربنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا الذي كنا نعمل اولم نعنمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير آنها در دوزخ فریاد میزنند پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آن چه انجام میدادیم در پاسخ به آنان گفته می شود آیا شما را به اندازه ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر می شود عمر ندادیم و انذار کننده به سراغ شما نیامد؟ اکنون بکشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست این الله عالم غیب السماوات والارد انه علیم بذات الصدور خداوند از غیب آسمان ها بزرین آگاه هست و زمین آگاه است و آنچه را در درون دلهاست میداند هو الذی جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعلیه كفره وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَرَى اوست که شما را جان در زمین قرار داد هر کس کافر شود کفر او به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و قذب در نزد پروردگار چیزی نمی افزاگد و نیز کفرشان جز زیان و خسران چیزی بر برانها اضافه نمی کند قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون الله ارونی ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام آتيناهم ام آتيناهم کتابا فهم على بینت منه بل این یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بگو به من خبر دهید این معبودانی را که جز خدا می چه چیزی از زمین را آفریده اند. یا اینکه شرکتی در آفرینش و مالکیت آسمان‌ها دارند یا به آنان کتابی آسمانی داده ایم و دلیلی از آن برای شرک خود دارند نه هیچ یک از اینها نیست ظالمان فقط وعده‌های دروغین به یکدیگر می‌دهند اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا خداوند آسمانها و زمین را نگاه می تا از نظام خود منحرف نشوند و هر گاه منحرف گردند کسی جز او نمیتواند آنها را نگاه دارد او برد بار و آمور است و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیقونن اهدا من احد الامم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلا نُفُورًا آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیام بری انذار کننده به سراغشان آید هدایت یافت ترین امتها خواهند بود اما چون پیام بری برای آنان آمد جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی برانها نیرسوت استکبارا فی الأرض و مکر السیئ ولا يحيق المكر إِلَّا إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگهای های بدشان بود اما این نیرنگ ها تنها دامان صاحبانش را میگیرد. آیا آنها چیزی جز سنت پیشینیان را انتظار دارند؟ هرگز برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت و هرگز برای سنت الهی تغییری نمیاددهند؟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 در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که از اینان قویتر بودند نه چیزی در آسمانها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت. او دانا و تواناست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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ فا اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام دادهاند مجازات کند، ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت. ولی به لطفش آنها را تا سرآمد معینی تأخیر می اندازد اما هنگامی که عجل آنان فرا رسد خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا میدهد. او نسبت به بندگانش بیناست و از اعمال و نیات همه آگاه است